در درود خدمت شما شنبن عزیز هستم و مشروح برقی از خبرهای امروز یکشنبه شمبه 26 نوام برابر با پنجام آذر را به سمع شما عزیزان می رسانم. در صدر خبرها شما را از نظریات پرستو فروهد، دختر داروش فروهد و پروانه اسکندری از نحوه برگزاری دادگاه مطلی میکنم روز شنبه 4 آذر برابر با 25 نوامبر دادگاه پرستون فروهر دختر دایوش فروهر و پروانه اسکندری که از پروانیان قطعای سیاسی زنجیری سال 1377 بودند برگزار شد پس از برگزار شدن این دادگاه پرستون فروهر در گفتگوی اختصاصی با زمانه درباره آنچه در دادگاه گذشت گفت دادگاه نکته تازهی نداشت با توجه به محتویات که بیشتر شامل فرونده سازی بدون سند و مدرک می شد، مطالب داخل پرونده تنها حالت تبلیغی و شعاری داشت و بیشتر به کار روزنامه های از جنس کیهان میآمد پرستو فروهر در ادامه گفت من و وکیلم مانوش منوچهری های خودمان بر ضد اتهامات را بیان کردیم و احساس کردیم که این استدلالها یاد داشت و شنیده شد البته دفعی پیش نیز دادسرهایی که اتهامات را بررسی میکرد ها را شنید اما که پرخواست نشان داد که آن استدلال ها به جایی نرسیده است پرستو فروهر با تو اطحان علیه نظام و توهین به مغذتات رو به رو است به گفته خانم فروهر نقطه قابل توجه برای اون در این پرونده این بوده است که با خواندن آن متوجه شده که کل قضیه به ارتباط این پرونده با پرونده های, های سیاسی آدر 1377 قرمی گردد او در این باره به زمانه گفته است بسیاری از نقاطی که در اینجا مطرح شد به پرونده اصلی باز می گردد از جمله اینکه من هر ساله بدون توجه به دستور مقامات امنیتی مراسم بزرگداشت می می‌کنم مقامات امنیتی را با تحلیل غلط به دست داشتن در قتل پدر و مادرم متهم می‌کنند یا اینکه می‌گویند دستگاه قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه است. قرار سفروهت تأکید کرد در دادگاه روی تمام این نکات isinstanceی کرده است و ادامه داد به نظرم اینها عین واقعیت است من روی این حقیقت تاریخی که دست کم چهار مورد این قضا از درون دستگاههای امنیتی اتفاق افتاده با خواهم کرد به گفته او اگر دادگاه به این نکات به عنوان اتهام نگاه کند وجدی دارد این پرونده را بررسی کند پرستو فروهر درباره زمان صدور رأی دادگاه نیز گفت که این موضوع به هفته آینده معقول شده است او گفت بنابر اظهار قاضی پرونده من به صورت حقوقی ممنون خروج نیستم البته روادید سفرم را در فرودگاه گرفتند که قرار بود در دادگاه پسند اما این کار نشد پرستو فروهر اما پیش از حضورش در دادگاه یادداشتی منتشر کرده است توجه شما را به بخشی از این یادداشت جد میکنمد هر تنها در سرکوب و قطع اتفاق نمیفتد بلکه در تحمل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله مییابد و تاریخ تنها گذشته ما نیز که چگونگی آینده ما را رقم میزند اگر روی حقیقت تاریخ ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده خود نیز به آنها که می کنند میکنند باختهاین پر از تو فروهر در ادامه نوشتن هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده خانوم مانوش منو چهزیز دو بار برای خاندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم آنچه در شهر اتحام های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکار کننده هدف اصلی شاکی در خانوش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است از جمله در اثبات اتهام تبلیغ علیه نظام نوشتهاند، متهم با ارائه تحلیل سیاسی نادروز دستگاه امنیتی را در کشته شدن پدر و مادرش متهم می کند متهم دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدر و مادرش معرفی می کند متهم بازرسی ها و جمع آوری های و مدارک حزبی مربوط به فعالیت های پدرش را که تا کنون نیز پستازه نشده است. قارت سیاسی می خاند. به روان معمول مادرم لابود به دلیل زنبودن حد شده است پرستو فروه است که در 19 سال گذشته هر سال برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادر خود از آلمان به ایران سفر می کند بعد از ظهر چهارشنبه یک یکم برابر با 22 نوامبر پس از 12 سال مراسم بزرگداشت نوزدهمین 19 سالگرد قتل پدر و مادر خود را در تهران برگزار کرد در بیش از یک دهه گذشته نیروهای امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده بودند پرستو فروهر در یادداشتی که پیش از برگزاری مراسم یادمان فروهرها برای دعوت از مردم برای شرکت در این مراسم منتشر کرده بود خبر احضار خود به دادگاه را اعلام و نوشته بود در همان فرودگاه هم را گرفتند و برگه به دستن دادند تا روز دوشنبه به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه مراجعه کنم و گفته بودند پاسپورتم را در این روز پس خواهند داد اما حالا موکول به روز دادگاه هم در شنبه هفته آینده شده است آنچه در این دفتر شنیدم نمایانگر آن تگنایی است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و غذایی در هماهنگی با یکدیگر برای من مهیا کردهاند بنیادش بر وارون نمایی و تهدید و ارعاب بود وزارت اطلاعات پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت امسال به پرستو فروهر گفته بودند که مسئولیت هر آنچه که هرکس برای شرکت در این مراسم بیاید بگوید به پای او خواهد بود و بر سنگینی پروندهاش در دادگاه انقلاب خواهد افزود پرستو فروهر همچنین در 28 آبان 1396 خبر داد که در بهار امسال به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کرده و در نامه ای درخواست کرده بود تا وزیر اطلاعات و وزیر کشور و داستان تهران را به عنوان مسئولانی که موظف به تأمین امنیت و آزادی شهروندان هستند مورد پرسش قرار دهند تا پاسخ که بر چه اساسی و با, با کدام مجوز قانونی و با دستور چه مقامی به یک شهروند داغدیده اجازه برگزاری مراسم یاد بود برای پدر و مادرش داده شود و این و ترین حق فرزند را از او دریغ می کنند. در همین حال روز جمعه محمود صادقی نماینده اصلاح طلب محسوس شورای اسلامی ایران به احزار فرستو فروهر از سوی مقام های امنیتی نشان داد و در تویتر خود نوشت: وزارت اطلاعات باید به جای شکایت از اولیای دم آسفکوی جنایات و مأموران خودسر خود در قتل فجی فروهرها باشد او همچنین وعده دارد. از وزیر اطلاعات در این خصوص سوال خواهد کرد در قطعهای زنجریه 1377 داریوش پروه هست در کل ملت ایران و همسر او پروانه اسکندری شاعر و فعال سیاسی از چهره های نظام محمد مختاری، محمد جفر پوینده، مجید شریف و حمید زاده نویسنده در روزامنگار به همراه کارون به سر حمید حاجیزازه و پیروز دوانی فعال سیاسی و صاحب تیاز پیروز به دست معمولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند وزارت اطلاعات ایران هناصر خودفر در این وزارتخانه را مسئول این قرط معرفی کرده بود که دادگاه هشت متعن این جنایت ها به شکل غیر علنی برگزار شد که ستن از آنها به اعدام 12 به زندان و سه تن دیگر تادید شدند اما دیوان عالی کشور حبس اعدام را به 15 سال زندان کاهش داد از سعید امامی یا سعید اسلامی معاون بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در جریان این پرونده به عنوان عامل اصلی قتل‌های زنجیرهای نام برده شد که بنا اعلام منابع رسمی در زندان با خوردن داروی نظافت خودش را کشت علی متحری نیز نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ایران در یادداشتی با استقبال از برگزاری مراسم یادبود داریوش فروحت و پروانه اسکندری قربانیان قتلهای زنجیره نسبت به تعقید غذایی پرسدو فروحت دختر آنها انتقاد کرد متحری در این یادداشت که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا شنبه چهارم منتشر کرد. با انتقاد از محدودیت برگزاری مراسم یادبود در سالهای پیشتوشت این سال در اول آذر سال روز قتل بحشیانه داریوش خروه و به همسرش پروانه اسکندری در سال هفت و هست به دست مهموران وزارت اطلاعات به دختر آن دو مقتول مظلوم اجازه برگزاری مراسم یادبود البته صرفا با سکوت دادند همین نقدار هم یک گام به پیش در جهت احترام به حقوق مردم است. متحرید در ادامه یادداشت خود از تشکیل پرونده قضایی علیه پرستو فروهر دختر دو رهبر کشت شده حضر ملت ایران انتقاد کرده و نوشته مایه تعجب است که برای دختر آن دو مختور به خاطر پیگیری برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش در سالهای گذشته پرونده قضایی تشکیل شده به جای آنکه از او بابت مصیبت و خسارت روحی و مادی که بر او وارد کردین دلجویی کنیم